پرسیدن که مدتی خااه بعد می و قسمت به یکی از بچه ها خواب بعد دیدم علت چی باشه؟ بعد صدقه بده ر میشه.